رخداد نادرستی نظری های هویت تاریخی ایرانیان از دیدگاه انسان شناسی موسیقی سدای امید برنامه رخداد در قسمت دوازده این برنامه در خدمت شما هستیم با ادامه نقد نظریه داروین درباره حیات و شکلگیری انسان و نجات جناب بقی ایران مهر بنده ازخاهی میکنم در اواخر قسمت آش. گذشته یه هاشه ایران باز بنده شروع کردم در آش. باره بله سیستم تربیتی یونان باستان و اینکه اساساً چه اندیشمندان دوره روشنگری و حتی ایداالیسم آلمانی ایداالیشون در واقع دموکراسی مستقیم یونانی معروف به دموکراسی پریکلسی بود. ادامهش فرمانشت شما رو و در خدمت شما ارز میکنم. در ادامه فرمانشت شما در همون دولت شهر بردگان آندر و پدون نامیده میشدن. بله. به معنای جانور دوبا. دقیقاً بله. لا حال. گاهی <تصفح> نقد میشه که خب آقا، حالا بعد میشه بعدها درباره بسکت الان دیگه واردش نمیشیم دوست جوانان ما تاثیر تح... ماهواره ها برسان های غربی میگن آقا سه هزار سال پیش حالا گیریم یه چیزی بودیم الان چ... مثلا چیم ما مثلا میگی مثلا حالا من براتون خودم مثال میزنم شما تمامی کتاب مدیریتی که در دانشگاه ما تدریس میشه کتاب های نویسندگان آمریکایی با ترجمه دکتر ایرانی دقیقاً برای. یعنی که آقا مدیریت رو اونا درست کردن ما هم بعدا یاد گرفتیم خب حالا به شما میگم دنباله فرمایش شما رو میگم درباره سپاه هخامنشی در زمان خشایار شد دقیقاً. حالا بگیریم بین 100 تا 300 هزار تا استاد فریدون دی میگن که خب حالا گیریم که 100 یا 300 هزار تا آدم الان زور شد رسیدن سر راهشون یه جایی بله با اینو پیاده میشن اینا نهار نمیخوان دقیقاً برای. آب نمیخوان دقیق نمیخوان اینا بعد اون نباد اون از پاشون چیزی نمیخوان بعد شما میدونین تدارک که اینا پیشبینی اینا برنامه ریزی اینا برای چند سال حرکت رفت و برگشت چه برنامه منظم و مدونی میخواد چه مدیریت, چه قوی, مدیریت میخواد؟ قوی میخواد مدیریت شفاهی مگه میتونی اینا رو دقیقا. چیز کنه من یه بار خدمت های دکتر کامیار عبدی های دکتر مرزاد مرکساده بودیم مناظری بود سال نوت مرز کردم ایشونه خب اینا باستان شناسی بیشتر تکیه میکنن مرز کردم دکتر شما میگین که چون ما کتیبه ای از مادها پیدا نکردیم درباره خطشون فعلا پس نتیجه میگید که مادها احتمالاً خط نداشت مدام میشه اینو در زمان جنگ با آشور در زمان ماد متأخر وقتی پیکشون داشته میرفته به نصری نبرد مثلا فرمانده بهش میگفته آقا جان اینا رو چون که ما خط که حالا نداریم که تو اینا رو زحمت بکش برو بگو داداش رفتی اونجا یادت نره اینا را. آخه آدم خندش میگیره. اصلا با, با قول فرمای شما. با منطق اصلا جور در نمیاد. بله. حالا این اون چیز لاعدراهی دیگه. چون من نمیبینم پس نیست. نیستشت. نمیشه که. نمیشه. بنابراین آیه فرید اونجور میگن این همین چیزی که بهش میگن الان ترابری یا لوجستیک. در شاهنامه به نام سپه کشی آمده. این اصلا یک نخبگانی فرماندهانی اصلا کارشون فقط سپهکشی بود یعنی اینا برن و برگردن ضمنی اینم که حالا بعدن میرسیم اشاره میکنیم دیگه سرکشی خشایای دکتر شیم و کلی میگن سرکشی داریوش و خشایارشا به،, به استانهای یعنی ساتراپهای های شمال غرب ایران بیشتر گاهی شورش هایی میشده گاهی در اج هایی میشده و اینها قواشای مکرر برای تنبیه اونها میرفتن و در یعنی در همین حد اون چیز مستقل مفهوم مستقلی که به نام یونان غرب اینو درست کرد از قرن ایجده و خودشو به اون ارجا داد و گفت دیگری رو در برابر اخامنشی تعریف کرد اصلا موهومه حالا دیگه به اون اشاره نمی کنیم میدیم دنباله اون فرمایش آقای ارسطو مقدونی که چه آتشایی سوزون با آموزشایی که به اون اسکندر یا الکساندر داد و حالا کار نداریم ایشون فرموده که بله آب قوی مرد جنین پسر و آب ضعیف او جنین دختر را میسازد این باور به درازای دو هزار سال از سوی غربی ها پذیرفت پذیرفته صدا. شده بود برد. حالا دیگه میایم به دوران نوزایی یعنی اون انق... انقطاعی که من متعرض شدم ببینید اینا از اون زمان دیگه فروکش کرد همه چی حالا چجوری پدید اومده بود اون یه بحث دیگه است دوباره از زمان نوزایی یعنی پس از سقوط قسطنطنیه به قولهای دکتر زبیر بهروز پس از راهیابی و ترجمه نوشته های ایرانی، از قرن 16 در اروپا دیگه حالا صبح همه دانشمند بوده از خونه‌هاشون می بیرون کم کم این نظریات حالا می‌بینید به نام اینا گسترش پیدا می‌کنه حالا دیگه از زمان ارسطو دیگه هیچ نظری در غرب نمی‌بینیم میپریم به قرن 17 پس از آنکه دو گرافی هلندی در سده 17 تخمک را مشاهده نمود مالپیگی فرضیه پیش ساختگی یا پر فرماسیون را پیش کشید یعنی در درون تخمک حالا این تازه رسیده بودم به اینجا که در درون تخمک آدمکی هست بله. که پس از ورود منی مرد جان گرفته و رشد میکنه تازه هم دویدن تازه رسیدن به اینجا پس از مشاهده اسپرم در 118 نيز این بار این نقش به تخمه نرینه سپرده شد یعنی میگفت حالا باز یه آدمکی تو اسپرم میاد اینجا شمید. همانند تخم گیاهان که زمین آن را پرورش میدهد و میوه خود را به مانند تخم کشته کاشته شده بار می آورد. یعنی هنوزم بری زن اون ارزش ژنتیکی 5050 رو قائل نبوده 800 سال پیش از آن که سرانجام ولف درباره گشنگیری تخمک با اسپرم و تشکیل جنین سخن بگوید حالا میخوایم ببینیم مثلا 800 سال پیش از این چی بوده من حیفم میاد وارد این بحث بشم چون اینجا دیگه جویده جویده میشه حالا میرسیم به اون زل سوم یا اون باورهای کوهن شرقی که حالا من گفتم غربی یا یه چه فکر میکردن انشاءالله خدا بخواد در نشست های آینده الان فهمشو شما رو میشنمیم من میگم زل سوم یا اون فرهنگ و تمدن کهن شرق در این باره چی میگفته 800 سال بلکه چند هزار سال پیش از دیدگاهی که قربی مطرح کردن بله، که بسیار بکنه. جالبه دید. بله خیلی بحث شیرین هم خواهد بود و با هم این بحث پیش خواهیم برد. ولی حالا خوب ما درسته در واقع نقد هایی داریم در مورد مسئله و از قبل نظریهی در مقابل این نظریاته که غربی ها تا قرن 18 هم در واقع میرسن و هنوز که هنوزه برای زن به قول شما نقش پنجاه پنجاخ نقش نس به نس در تولدی مثل هم قائل نیستند اه. ما توی شرق داشتیم اینا ولی در این حال برای همین نظریه تکامل در همون موقعی که به وجود میاد و نزج میگیره در میان دانشگاهیان اون موقع غربی در میان اندیشمندان مسیحی هم ما واکنش هایی رو داریم در مقابل این نظریه که من این واکنش ها رو به صورت تیتوار عرض میکنم خدمت دوستان. اولیش... اه اه کتاب مقدس هستش که بایبل بل. در مقابل این نظریه در واقع مسیحیان مطرح میکنن هم کلیسای کاتولیک و هم کلیسای ارتودکس و حتی پروتستانهای اون موقع که آفرینش انسان رو به صورت دفعی و بدون واسطه و به دست خداوند میدونه از این رو کشیشان نسگرای مسیحی با توسل به متن کتاب مقدس در دفاع از مقام انسان یکسره نظریه تکامل رو باطل اعلام میکنند زیرا نظریه تکامل آفرینش را تدریجی میدونه و این آشکارا با ظاهر آیات تورات ناسازگاره این رو از جلد ششم تاریخ فلسفی فردریک چارلز کاپلستون دومین واکنش که در واقع این واکنش عمومی بوده دومین واکنش در واقع اولین واکنش خاص یک کلیسایی بوده یه کشیش خاص که انزازه هاچ که یکی از کشیشان کلیسای برینستون آمریکا هستش نظر یه رو با آنچه در کتاب مقدس و اهل کتاب به طور کلی در باری ماهیت و سرنوشت انسان مطرح میکنه ناسازگاره. اما در این حال این آقای رابرت هانچ متقلی که اندیشه ملحدانه هم هستش بل. به اعتقاد او هرچند تحورات گسترده ای در سیر تکوینی حیوانات رخ داده و این رو میپذیره نمیتوان گفت که انسان همان میمون تکاملی یافته است بلد. و در واقع اینجا میاد البته این کلیسا که مرمون ها بوده تا حدودی و یه چیز شبیه در واقع تکفیری های در واقع تا هر دینی هست دیگه اینام تکفیری های در واقع دنیای مسیحیت هستن که در واقع تکفیر میکنه هم خود داروین هم داروینیست ها دوستان ما فکر کنن که اونا به اندازه‌ی وحشتناک نبودن من به شما بگم بدین تاریخ رو بخونم خیلی ورشدناکتر از داشت بودن یا پهلو به پهلو اینام میزدن تو تواهش بله اتوان تو شبکه های اجتماعی یه تمری من دیدم تمر مال سال 1922 بود که فرانسوی ها این بله. اسرایی رو که توی الجزایر بله. سربریده بودن بله. با افتخار عکسی اینو تمبر کرده بودن یعنی بل. به عنوان افتخاری این, این تمبرشون بود و هم میدیدنی یعنی افتخار میکردن به این کار مثلا در میان جهان اسلام کسی به داش افتخار نمیکن هیچ حتی, حتی سلفی حتی عللمای عربستان سعودی سودی که در حال هستند همه این رو در واقع رد میکنن ولی اون موقع کل جهان قهر سال 1922 و, و, و در داخل اروپا به عنوان تمبر این رو در واقع تو نامه های توی پاکت نامه ها رو میذاشتم افتخارم میکردن دادام مهدی بدی که کتاب 15 جلدی یونانیوم و باربارا رو, رو نوشتن اون رو به فرانسه نوشتن استاد زند یاد مرتضى ساقفری اینو به فارسی ترجمه کردن <تصفح> میگن که یک بخشی میگن که شما برای که بفهمه به میزان توهوش قرب در همین صدای اخیر پی ببرین شما کافیه فقط بدین تاریخ میشله فرانسه رو بخونین تا دیگه اصلا بدتون بیاد از اینکه بخواید به اونام نگاه کنید چه برسی بخواید پیرو شون بله. سومین واکنشی که در دنیای مسیحیت اندیشمندان معتقد و مؤمن به مسیحیت در برابر نظریه تکامل داونی مطرح میشه آلفرد راسل والاس هستش که متولدی 1833 و متوفایی 1913 هستش که خودشم طبیعیدان بوده و در سال 1858 مستقلا به نظریه انتخاب طبیعی رسیده بود در آثار متاخرش مطرح میکنه که انتخاب طبیعی ببینید عین این واجهش میخونم که در س... کتاب همون انتخاب طبیعی، انتخاب طبیعی صفحه 356 که به فارسی ترجمه نشده این کتاب از اینترنت من درآوردم و ترجمه شکست بسته کردم. شاید اگه ترجمه اشتباه باشه من از همین اون اسخه میکنم. میگه انتخاب طبیعی نمیتواند قوا دماغی عالی انسان را توجیه کند و این پرسش مهم را مطرح کرد که چگونه میتوان استعدادهای هنری و ذوقی و اخلاقی انسان را که هیچ سهمی در بقای او نداره استعداد ببینید من در بقای انسان خب اون چیزایی همون چیزایی در واقع دخالت داره که تو بقای مثلا بقای موجودات داره ولی خب این استعدادها و نمیدونم هنرها و این در واقع سیستم ذهنی انسان که خیلی نقشی نداره تو در واقع بقای اون گفت خب اینو چه جوری با نظریه تکامل میشه توجیه کرد میگه که استعدادهای هنری و ذوقی و اخلاقی انسان را که هیچ سهمی در بقای او ندارد با چگونه میتوان و با نظریه طبیعی انتخاب طبیعی تبیین کرد پس عقل و تدبیر عالی ترین جریان تکامل نوع انسان رو هدایت میکنه و اون معتقده که یک عقل بزرگ یک عقلی که همون بعدها فارابی قبل از اون هم گفته بود یک عقل فعال است که بالاتر از تمام عقول هست که در واقع این عقلها ها رو هدایت میکنه چهارمین واکنش واکنش توماس هنری هاکسلی هستش که خود از طرفداران داروین بوده، کشش مسیحی بوده، بس. از همون اول از طرفداران داروین بوده، به شدت با نظریه ارزش ارزش‌های اخلاقی از نظریه تکاملی مخالفت می‌کنه بعدها و در این نظر بود که راه و روش زندگی انسان رو نمی‌توان از نظریه انتخاب طبیعی یا با تقلید از قانون جنگل به دست به دست آورد. او صریحاً می‌گه که اخلاق انسانی نظریه و شیوه‌ی رو ترد می‌کنه. می که این شیوه های گلادیاتوری در زمان روم باستان یکی از اصلا در واقع بازی هایی بود که برای سرگرم کردن سناتر روم باستان و همچنین بزرگان اشراف روم باستان بود و این گلادیاتور اونقدر همدیگر رو در واقع میزدند و تا اینکه یکیشون به, به قتل میرسید و دقیقا به شکل قانون جنگل بود و بر اساس همون انتخاب بود انتخاب طبیعی بود پنجمین واکنشی که دیشمندان مسیحی دارن فورست انگلیسی هست یکی از کشیشان کلیسای انگلیکن هستش متولد 1781 متوفای 1833 هستش که اتفاقاً او هم در اول یک داروینیست سرسختی میگه می ولی معتقد بوده که رد معتقد بوده که اینکه تبار پدری و مادری انسان ها از یک میمون خاص و یا یک از سری موجودات شبیه میمون هستش معتقده که اون الهه که مثلا از زیبایی انسان در استور گفته میشه اینکه مثلا استور های قدیمی اینقدر مثلا زیبا بودن زیبایی هایی که مثلا در انسان ها بوده این زیبایی چگونه به وجود اومده شاید مثلا. انسانهایی هستند که مثلا ما توشون مثلا یه سری افراد عادی هم میبینیم زشت هم میبینیم میگه که زیبایی های وجود انسان و این حس زیبایی شناسی انسان رو چطوری میشه با نظریه داروین در واقع به وجود آورد و این بستش داد گفت حس زیبایی شناسی انسان هر... به هیچ وجه نمیتونه با نظریه داروین در واقع سازگاری داشته باشه تا قسمت پنجم عرض کردم از اتاق فرمانم میگن که قسمت دوازده این برنامه هم به پایان رسیده عرض شود که ما حالا حدود دوازده تا واکنش هستش اندیش من میمونه دیگه برای برنامه بعد دیگه برای قسمت سیز دام از خواهی عزیز و شما جناب آقای ایواندهن عزیز بله تا قسمت سیزده هم شما شنوندگان گرامی رو چون فرصتی هم نیستش من حدا قسمت 6 امورم بگم پایان قسمت 12 هم رو اعلام می کنم شما شنوندگان گرامی رو تا آغاز قسمت سیزده برنامه رخ به خداوند متعال می سپاریم. خدا یارو نگه دارد خدا نگه